من الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خیر موفق و مؤین ثم السلاة والسلام و غلا اشرف الانبیاء والمرسلین صبیب اله العالمین ابل قاسم محمد صلی اللہ علیه و غلاه لبيت تیبین طوهرین المنسونین من الآن الى قیام یوم الدین سيما بقيت الله في الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لن من الجنة قرفا بزرگترین عامل اصلاح فرد و جامعه از نظر قرآن کریم ایمان به خدا و انجام دادن اعمال صالح است دیگه دوبومی نداره دیگه هم یه است. خدا با تمام علم و حکمتش دیده هیچ عاملی بهتر از این این انسان دفع با این قرائز رو و این جامعه این که عبارتند از همین های دفاع بخوایم این انسان رو و این جامعه انسانی رو اصلاح کنیم و زندگی اینها رو مثل زندگی انسان قرار بدیم نه زندگی حیوانهای جنگلی هیچ آملی مؤثرتر از ایمان به خدا و این که اعمال انسان یک دست سالح و شایسته باشه این نظر خداست نه علم میتونه انسان رو درست کنه و جامعه رو اصلاح کنه نه صنعت میتونه نه سروت میتونه همه اینا اسیر دست نفس اماره انسان دو پاس زندگی رو به محیطش رو به سحالا جهنم میکنن اما اگر انسان در سایه ایمان به خدا طبق دستور خدا عمل کرد هم فرد اصلاح میشه و هم جامعه امتحانش مجانیه اما نفس اماره عادت کرده به گنا حاضر نیست لا اغلادم یه هفته امتحان کنه یه هفته گوش به خدا بده از موقعی که خواب بیدار میشه تا موقعی که میره به خواب در این بیداری انسان باید کار انجام بده یا تم به دستور خدا انجام بده یا تم به خواست نفس اماره یه هفته امتحان کنه خونی که خدا گفته انجام بده همش گفته نکن نکنه از خونه شروع کنه ببینه چه اثری داره یه هفته بیشترم نه اما آدم حاضره کارایی بکنه بره زندان گوش به حرف خدا ندی. حاضره انسان کاری بکنه مبتلا به بیماری های سخت بشه اما گوش به حرف خدا ندهی بله. نظر خدا اینه اونایی که خدا را قبول دارن و نسبت به وجودش ایمان و تصدیق دارن اگر بتونن خودشونو مهار کنن این ریاضت اسلامی است گوش بر خدا بدن حرف خدا زیاد نی در تمام زندگی دخالت نمیکنه خدا یه سری کارا رو گفته باید انجام بدی که لازم و ضروری است یه سری کار هم گفته نباید انجام بده خطرناکه گفته دزدی نکن ظلم نکن اینا رو گفته نکن آدم میفهمه که اینا خوب نیست همینا رو شما عمل کن هفته ببین چه اثری بینی هفته بعد ماه بعد سال بعدم عادت میشه برای انسان خدای مطال آدم رو دعوت کرده به ایمان و انبال ساله باشی چون میگن آدما گرفتار مسائل مادیا دیگه وعده بهشت بهشون داده گفت اگر ایمان بیاری به من به اون عقلی که من دادم بهت و اگر ایمان آوردی گوش به حرف منم بدی که همش به نفع خودته من خدا هیچ بهره از گوش به حرف دادن تو انسان نمیبرم من کم بود ندارم که تکمیل بشم که همینچین پروپهیمونه تویی احتیاج داری تویی اگر گوش بحرف ندی بود دسمش هر زندان بشه تو گرفتاری اما عقل آدم نمیرسید برابر این همین یه افت آدم امتحان کنه واجبات انجام بده معرمات و ترک ببینید چی میبینه اگر دید خیلی براش مفیده تکرار کنه ادامه بده انشالله. این یه نفر وقتی امتحان کردید خیلی خوبه اطرافی هم داره رفیق داره قابل کشتر اونانم دعوت کنه بابا چیز خوبیه فولم نمیخواد، حزیرم نمیخواد، مفته کلدازی هم دعوت کنه انشالله هرچی این موج دائرش وسیع میشه خوبی ها و فضیلت ها و مرقبت ها در فرد و جامعه بیشتر پیاده میشه مردم باور میکنن و میفهمند که خدا چه برنامه خوبی که مفید برای انسان و جامعه است تأسیس کرده اما متاسفان انسان روی گنگ نشسته و گدایی میکنه روی گنج نشسته دست گدایی او طرف قرب دراست میکنه تو اقتصاد به من یاد بده تو زندگی به من یاد بده او خودش لنگ بد او زندگیش مثل زندگی حیونای جنگلیه جز آدم کشی و قتل و غارت چیزی دیگه نداره که تو میخوایی بری شاگردی رو بکنی چی نصد بیاد امیدواریم خدای متعال و همه اون توفیق کنه یه هفته کش به خدا بدیم یه هفته باره امیدوار این توفیق نصیب همه ما بشه اگر دیدیم مفیده ادامهش بدیم انشاءالله نسار روح متحر خاتم انبیا و همه حضرات معصومین علیه من و السلام و شهدای خط تشیع به امام شهدا سه سنوات ختمونی اللهم سلام